بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه اجمعین اما بعد 28 هشتمین درس شرح شمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم تالیف امام ترمذی رحمه الله واسكنه فسیح جناته سیو ششومین باب باب ما جاء في صفت مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاح يعني شوخی نمس فرق بین تمسخور و شوخی تمسخور کردن یک شخص با کوچک شمردنش با تحقیر کردنش بیریشش خندیدن استهزا اینها شوخی نیست اینها مسخره هست و الله هم جل و علا تحدید میکنه وعید داره در قرآن اون کسانی که اهل تمسخور و استهزا و تحقیر دیگرانن ویلون لکل همزتن لومزه حالا با دادن با وصفی ناشایست که تحقیر درش باشه ویلون لکل هومزتن لومزه وی بای یعنی جهنم الله جل و علا سزای آنان باشد که کارشون تحقیر دیگران استهزاب دیگرانه اونهایی که به ریش دیگران می خندن اینها ممنوع در شرع ما حرامه چون همه محترمیم حق تحقیر و احتقار کسی رو نداریم حق این که الان به رنگش به نجادش به اصلش نسبش ما بخندیم بخندیم ریشش. به چیزی که به دست خودش نبوده خلقت آفرینش الله جل و علا آلا میخواد رنگش گفتم باشه یا میخواد نجادش باشه حق تمسخور کسی نداریم کبیری از کبایره یک از گناهان کبیره هست به قدش به قوارش چنان چه در حدیث داری اومن عایشه روزی از دهنش میپره در مورد اوم المومنین صفیه رضی الله عنه هم از میپره اینها قصیره قدش کوتاه رسول الله صلی قسم یاد میکنه و خشگین میشه و اللهی لقد قلت کلمه یک کلمه گفتی ها. یک کلمه که الله را خشگین کردین کلمات چیه اون کلمه؟ ما این قصیر یعنی به خلقت الله و آفرینش الله ایراد گرفتی خودش که به دست خودش نبوده قدش بلند باشه یا کوتاه باشه رنگش سیاه باشه یا سفید باشه این کلمات اگر تو آب دریا ریخته بشه فاسد میشه این قد این کلمه بده این گناهش بزرگه رسول الله علیه و السلام نصیحت میکنه ام المؤمنین عایشه که این را بگه به امت ابلاغ بکنه که چقدر جرم و جنایت سنگینه زمانی که شخص کسی را تحقیر میکنه و مورد تمسخر خودش قرارش میده اما شوخی کردن مباح مباح جایی میشه شوخی کردن حرام میشه ص برای کسی که ظرفیتش نداره خسن جایی که شوخی با دسته اینو باد برحضرر باشه. بعض یا شیشه قلبشون شیشه هست این مت نیستا. این خوب نیست سود رنج دل نازک اصلا کسی نمیتونه به چیزی بگه. مومن باد قوی باشه کوچکترین کلمه کلمه لوس لوسبار اومده گوشی گیره تنها تو خونه بوده تو جامعه نبوده حرف را تحمل نمیکنه. خب این شخص دیگه وقتی که یک بار دو بار. دیدن که این بهش داره برمیخوره و ناراحت میشه دیگه همه پرهیزش میکنن ازش فاصله میگیرن چرا چون ظرفیت نداره و ما هم وظیفه شرعی خودمون را انجام میدیم و آزارش هم نمیدیم مجبوریم ازش فاصله بگیریم چرا چون میترسیم تبدیل به آزار و بشه گناهکار بشیم تحمل خودمون رو بالا ببریم چیز خوبی نیست که تو مردم از تو پرهیز بکنن رسول الله صلی الله علیه و اون شخصی که بد اخلاق بود گفت به اس چه ادم بدی فلانی منو تعجب میکنه رضی الله عنها که چرا غیبتش کرد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. گفت که اسباب این که شما بر حذر باشید، اسباب این که بدونید از اخلاقش. بعضی جا هست ما رفتار بدمون اون بی‌ذرفیتی ما سب میشه مردم از ما پرهیز بکنن، فاصله بگیرن. جرئت نکنن با ما حرفی بزنن. خصوصا در زنا دیگه این خصلت بدتره. شوهر جرئت نداره که با اون زن شوخی بکنه. خصوصا که در بحث تعدد باشه که دیگه اگه زرف و سالم بذاره تو خونه شاهکار کرده بعد دیگه میگن که شوهر به ما اهمیت نمیده و شوهر حواسش به ما نیست خب شوهر نمیتونه نفس بکشه تو خونه که اگر با تو راحت نباشه تو خونه با کی راحت باشه یک شوخی اون مرد جرأت ند بازنش داشته باشه الله اگر حقیقت باشه چی میکنه این شوخی ها بریم به اون احادیثی که در این باب اومده از شوخی های رسول الله علیه السلام شوخی مثل امکه تو غذا نباشه قضا بدل دل نمیچسبه باید باشه ولی اگر زیاد شد تلخ میشه شور میشه بیمزه میشه نه زیادش خوبه نه کمش بله نمک لازمه دی و مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامه عن شريك عن عاصم من الاحول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلی الله عليه وسلم قال له يا ذل اذنين يا ذل اذنين حدیث ایه سبحان الله برکت حدیثه انس میبینم یعنی یک غبطه تو دل هم میاد میگم چه شرفی داشته انس رضی الله عنه که از بچگی زیر دست والا رسول الله صلی الله علیه و salam بزرگ میشه و تربیت میشه و اینقدر رسول الله هم صلی الله علیه و salam بهش راحته تو یکی دو تا صداش میزاد رسول الله علیه و salam یعنی انس رضی الله عنه تو که دو تا گوش داری دو تا مدح هم مدح هم شوخی هم مدح هم شوخی دو تا کسی هست که دو تا گوش نداشته باشه همه دو گوش داریم قال محمود قال ابو اسامه یعنی یمازحه شیخ شیخ امام ترمذی رحمه الله ابو سام میگه که این چنینن مزاح و شوخی رسول الله صلی الله علیه و سلم با انس بود رضی الله عنه بچه است ولی که رسول الله صلی الله علیه و اسلام با آش شوخی و مزاح داره میخواد ظرفیتش بالا بره میخواد تربیت بشه نمیخواد شیشه بار بیاد نمیخواد راحتیش شکسته بشه خرد بشه قوی باشه از یک جهتی هم مدح هم هست درش سنا هم هست یعنی رسول الله صلی الله عليه و سلم داره تعریفش میکنه تمجیدش میکنه توی که دوتا گوش داری خوب حرف رو گوش میدی حرف گوش میدی دل یعنی به گوشی به حرفی که من چی بهت دارم میگم یاد دل اوزانه تو که با تو تا گوش حرفامو داری گوش میدی که اینجا در شرح این حدیث بعضی ها اینچینین یاد کردن که رسول الله صلی اللہ علیه میخواد مدحش بکنه چون همیشه به گوش بود که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چی میگی یعنی همیشه گوش فرامی داد منتظر بود رسول الله علیه و السلام چی بهش میگه که اون حرف رو عملی بکنه از حبش به رسول الله علیه الصلاه و از حبش خیلی زیاد بود رضی الله عنه نگاه میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی غذای دوست داره نگاه میکرد که مثلا تو غذاش چی هست که قبلا گفتیم مثلا رسول الله علیه الصلاه و السلام رو خیلی دوست داشت میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو آبگوشت خورش کدو از توی غذا بیرون میاره میگه من از وقتی که دیدم دیگه تو دلم رفت چون رسول الله دوست داره منم دوست دارم این محبت رسول الله صلی الله علیه و داشت و به خاطر همین اینجا هست رسول الله علیه و سلم مدحش میکنه ای که دوتا گوش داری همیشه صداش میزد یعنی با این لقب یک مسئله دیگه هم که هست خب انس رضی الله عنه خادم رسول الله علیه و سنت ابو خدمتگزارش بود خدمتگزار کارگر هر کسی خدمتی به ما ارائه میده یاد بگیریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه با خادم خودمون تعامل داشته باشیم بخندیم چنان چه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا شوخی میکرد با خادم خودش نه اینکه خم رو بیاری چرا این بردی چرا اینجا ریختی داد و بیداد میکنهش با کبر و غرور خصوصا گردن میکشه جلوی اون کسی که داره خدمتش میکنه خدمتش میکنه داره به پول خودش مینازه دیگه چون پول داره اون کارگر محتاج پولش داره خدمتش میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم با خودش تعامل دوستانه داشت با مزاح شوخی چنانچه اینجا از رفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم با یک بچه داریم که داره خدمتش میکنه با یک بچه اینکه سنی ازش رفته پیرمرد به خاطر نونی در بیاره کار میکنه در مغازه یا جایی در خونه به جای پدر طرفه ولی که سبحان الله میاد آزارش میده با اون اخلاقش رفتارش این خلاف حدی نبوته حدی رسول الله علیه سيو ششو من حديث امام الترمذي رحمه الله بيات حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبه عن ابي التيا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل نغير حديث قابلاني اين داشتيم در شرح منبر ادب مفرد حديث هم در بخاري و مسلم حديث هم در صحيح بخاري و مسلم و یکی از احادیث خیلی مهمیه در باب تعامل اونجا ما بیش از 20 تا فایده گفتیم درس گفتیم که در این حدیث هست اینجا امام ترمذی بسنده میکنه به چند تا فایده چنین میگوید امام ترمذی رحمه الله وفقه هذا الحديث ان النبي صلی الله عليه وسلم كان يمازح ابي اینکه انك رسول الله صلی الله عليه وسلم شوخي مكث اصرف حديثا وفيه انه كنا غلاما صغيرا انك رسول الله عليه الصلاه والسلام بچی بهش کنیه میده بزرگی ازش یاد میکنه اب عمر اسمش زید بود زید ابن سهل برادر ناتنیش بود برادر از مادر مادرشون هم که معروف دیگه اون مسلمه زید ابن سهل الله صلی الله علیه وسلم اینچینین با بزرگی مورد خطاب خودش قرار میداد. یا با عمر فقال له يا ابا عمير وفيه انه لا باس ان يعطى الصبي الطير يلعب باصفق حديث اني بچه با گنجشکی بازی بکنه مشکلی نیست مادامی که آزار عزیتی توش نباشه وانما قال له النبی صلی الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل نغير اي ابا عمر نغير چیکار که چی شده چون مرده بود میخواد رسول الله عليه الصلاه دلداریش بده یک نوع تسلیتی براش باشه لانه كان له نغير يلعب به فمات یک کوچیکی داشت باش بازی میکرد مرد فحزن الغلام علیه اون بچه نراحت میشه دلتنگ میشه فما زحح النبی صلی الله علیه و سلم برای تسلیت رسول الله علیه و سلم باش شوخی میکنه فقال یا ابا عمر ما فعل غیر ای ابو عمر چی شد بر سر اون نغیرت اون گنجشکت اناس رضی اللہ عنہ جام میگه یعنی ابتدای حدیثش میگه از وصف رسول اللہ صلی الله علیه و سلم امکان رسول الله صلی اللہ مخالطه داشت یعنی با ما نشست و داش، داشت نشست، بازی میکرد، شوخی میکرد نه اینکه که اونها را از خودش دور بکنه و, و هیچ ارتباطی با اونها نداشته باشه چون خدمتکارن یا خدمتگذارن یا بچهن پس اونها را ترد بکنه از خودش بعد میگه حتی یقول اخین لی سغیر به برادرم که کوچکتر از من بود که گفتیم برادر ناتنیشه برادر از مادرشه که زید بود رسول الله صلی الله علیه و سلم من استواذعشه که این چنین تعامل می‌کرد حتی با یک بچه احمد بن ابي احمد تبريني شافعي میگه که من این حدیث ازش 60 فایده برداشت کردم که تو یک جزئی یک کتابی مجزا می‌نویسه و ابن حجر هم خلاصش میره در فتح الباری و یه چیزای هم بهش اضافه میکنه که ما در درس عدم مفرد شرحمون اونجا خلاصه ترش کردیم و اونجا گفتیم که دیگه نیاز به تکرارش نیست دیویست و سی و حدیث امام ترمیذی رحمه الله میگوید حدثنا عباس ابن محمد الدوری قال حدثنا علی ابن الحسن ابن شقیق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أوسام بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له والأمة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا أبي هريرة رضي الله عنه مجيئات قفتي برسول الله صلى الله عليه وسلم طب ما شوخي ممكن مداعب داري شوخي طب إين شوخياتهم يعني مش اشتباه دارش باش مش بحقاً نباشه أسباب السؤال قال اني لا أقول إلا حق من جز حق چیزی دیگه نمیگم یعنی محال از من دروغی دار بیاد حتی اگر باش. شوخی باشه. حتی شوخی های منم حق لکه هادو ماد عنوان شوخی های رسول الله عليه و سلم شوخی های رسول الله صلی عليه حق بوده دیویسوسی و هشت دومین حدیث نمام ترمذی رحمه الله میگیاد حدثنا قتیب ابن سعید قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق أنس ابن مالك رضي الله عنه روزي يك ماردي وما نزل رسول الله عليه وسلم ميك خم خب ما نصواركنيت ما نصواري نادرا چطوری چیزی باشه منم سوارش بشم رسول الله صلی الله علیه وسلم خب این شخص الان جدیه دیگه الان اومده خسته شده دنبال یک یه اسب سوار بشه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه بچه چطوری برات پیدا می که روش سوار بشی شخص ناراحت میشه میگه یا رسول الله بچه چطوریو کار کنم بچه چطوری منم سوار میشه بچه چطوری منم سوار میشه بعد رسول الله صلی الله عليه و بون شخص میگه مگه شطور جز بچه میزایه خب بچه میزایه بعد اون بچه بزرگ میشه دیگه روش سوار میشه بچه شطور دیگه مگه شطور قرر شطور میزایه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم حرفش درست بود ولی اون فکر کرد که شطور کوچیکی او را سوار میکنن شطور کوچیکی او را سوار میکنن اون بدفهمید رسول الله صلی الله علیه و سلم حرفش درست بود بچه بچه‌ای شطوری الان شما بچه کی هستید پدرتون حالا چون بزرگ شدید دیگه بچه نیستید نه شما بچه پدرتونی؟ و هر چوری هم بچه پدر خودشه. حرف رسول الله صلی الله و سلم حق. اینجا رسول الله صلی الله و سلم بهش توضیح میده و هدفش هم رسول الله علیه و سلم این بود که اینجا با این شوخی و مزاح خسیگی راستنش در کنه چون خسه بود. اوم اومد اینجا تقاضای سواری رو میکنه چون خسه شده. دنبال یه کسی که جورش بکشه. تسلیات. همونطور که در حدیث قبلی انس رضی الله عنه داشتیم. اینجا هم همینطور. بازم حدیث انس رضی الله عنه. تسلیات. سبوک کردن باره کسی. شوخیت بارو کم بکنه نه که بارو زیاد بکنه بعضی جاها شوخیات بار زیاد میکنه مواظب باش شوخیت هر کسی گفتم ظرفیتشو نداره تحملشو نداره دیوستو نوومین حدیث امام ترمذی رحم الله میادات حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس ابن مالک رضی الله عنه ان رجلا من اهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميمة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وهو يبيع متاعه فاحتضانه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال حدیث سهیه حدیث انس بن مالک رضی الله عنه میگه یاد اینجا در این حدیث فردی مردی از اهل بادی از بادی نشین ها که اسمش ظاهر بود ظاهر بارزه ظاهر بود اسمش و زمانی که می اومد برای کاسبی از بادیه شهرنشین نبود بادی نشین بود تو روستای زندگی میکرد از روستا می اومد به شهر برای فروش یا کشکه یا روغن یا اون چیزی که بالاخره از اون که داشت می تو شهر می فروخت. زمانی که میومد به رسول الله علیه السلام با خودش هدیه کادو می اوورد. از اون یا از اون کشک و کانه هدیه الى نبی هدیه الله علیه و از اون بادی از اون روشساش وقتی که میومد با خودش هدیه ای برای رسول الله علیه الصلاه و السلام می آورد فیجهز هو نبی صلی رسول الله علیه و السلام دست خالی برش نمیگردون جواب خوبی با خوبی میداد هدیه آورده بهش هدیه میداد بهش میداد از اون چیزی که داشت رسول الله علیه السلام و نیاز اون بادیه نشین بود اذا اراده یه خوش زمانه که میخواست بر بگرده از شهر بر بگرده به روستاش فقال نبی صلی الله علیه و سلم: این نظاهرم بادیتونه و نحن حاضر بادیه ما یعنی روستانشین ما این ظاهره و ما هم شهرنشینیم شهرنشینان نیازمند روستانشینا هستن و روستانشینا هم نیازمنده شهرنشینا یه حاجتی هست ما به اونها برآوردی میکنیم یه حاجتی هم هست که اونها دارن که برای ما میارن و برآورده میکنن برای ما اون از اون حاجت و نیازمون و کان صلی الله علیه وسلم سلام یحبه این شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم محبتش داشت دوستش داشت بادی نشینه فقیره دامی داره کشگیروغن میاد میفروشه تو شهر ولی رسول الله علیه, علیه و سلام دوسش داره و کان رجلا دمیما این شخصم خوش شهر نبود منظرش چهرهش زیبا نبود قشنگ نبود خوش شهر نبود که نره جولن و بعد بعض از درواته مونه دمیم از بداخلاقی میاد ولی این شخص بداخلاق نبود حالا میبینیم در حدیث رسول الله صلی اللہ علیه اینجا یاد میکنه خوبی ما بدی ما به چهره ما نیست ينشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرم يان إن الله لا ينظر إلى سواليكم وأموالكم الله جلّب على نقاه شهراتم مالت كنبيكنا ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم الله جلّب على نقاه بعمال ما بقلب ما داره هم ترك الله جل على در القرآن يقول يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم مكرمتيني شما محبوبترین شما به درگاه الهی کی متقی شما اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم و خبیر اللهم میدانه و خبیره به حال ما آگاهه خب این شخص یکی از اون اشخاصه که الله جل و زیبایی نداده بود ولی که زیبایی دلش داده بود, دل بود تقوا داده بود ایمان بهش داده بود دل و قلبش با ایمان آراسته شده بود فاتاه النبی صلی و سلم یوما روزی تو بازار داشت میفروخت اون جنسش اس فوش میاد رسول الله صلی الله عليه وسلم سلام حواسش هم نبود و هو یبیع متاعه داش کالاشو میفروخ فاحتضنه من خلف فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني یعنی فی انبر علیه و سلام عقب معد صینه خودش رو به شونهش میچسبونه و چشماشو میگیره طوری محکم میگیره که سرش هم چرخ نده و هو لا یبصره نمیدی دیگه نمیتونه رو به چرخ عقب نگاه کنه محکم رسول الله علیه و سلام سرشو گرفته که نگاه عقب نکنه فقال من هذا ارسلني کیه مارو ولكون بودين شئنا ما روبن فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فهميت كلا الله مديت كلا الله صلى الله عليه فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بالصدر النبي عليه الصلاة والسلام دي تكُون يك نسيب الشودة سيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه الصلاة والسلام تشسب ده بشو نهاش إفتخاري نسيب الشودة حين عرف هو قصة ما الزمن فجا على صلی الله عليه ووسلم يقول صلله ووسلم چینی فر بودن اونجا من شتری من العبد این بنده را کی از من میخره بنده نبرده حالا چون شکل شکل برده گام بود خوشره نبود سیاه بود الله عليه حسات وسلام فر من شتری من هذا العبد این بنده را کی از من میخره همیشه عبد معنای برده نمیاد اینجا منظورش چی بود بنده بنده الله جلله اللم یا رسول الله اِذَنْ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ إِلَّا قَاسِدَ که مر بخار؟ مانگه قاسده کی مر بخار؟ قوله بخاسیه هیچ کسی مرون بخار؟ کسی مرون بخار یا رسول الله علیه الصلاة والسلام و رضی اللہ علیه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، "لكن عند الله لا بکاسد تو میدنی قیمتت نزد الله جل وعلا کم نیست تو خیلی گران قیمتی نزد الله جل وعلا الله اکبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در از قیمتش نزد الله میگه چه یه نصیب این صحابی شده و در روایتی میگه انت عند الله غال تخیلی قیمته نزد الله جل وعلا بالاست اینجا پول نیست ثروت نیست کاشک ورده به فروشه روغن ورده به فروشه هست روستا آمده بادی اومده ثروتمند نیست پولدار نیست بهترین ماشین سوار نیست علاقهشو رو داره میاد وسط شهر دستفروشی میکنه دستفروشه بلیکن قیمتش نزد الله جللا بعدا خیلی گرانه کار عار نیست. الله نکاری به کارت داره نبگویی به شهرت داره الله نگویی به قلب داره. ان اکرامکم عند الله اتقا اللهم براش قلب تو مهمه، ایمان تو مهمه. قیمتت به قلب و ایمانت. قیمت نزد الله جللا بعدا. از مردم بزار مردم هرچی بهت میگن مردم هر چقدر بهت ارزش میدن. جایی شاید خودت احساس بکنی نزد پدرد، نزد مادرد، نزد خواهرد، نزد برادرد قیمتی نداری. حسین خانواده انسان بیشتر احساس میکنه که قیمت ندار چون بزرگش کردن چون از کوچیکی باهاشون بزرگ شده. بلکه دیگران زمانی که آزارش به کسی نرسیده وقتی که میبینه دیگران تحقیرش میکنن وقتی که میبینه دیگران با چشم دیگه نگاهش میکنن شاید بر خودش احساس سنگینی بکنه بر دلش سنگینی بیاد نسبت به کارش نسبت به شغلش شاید خودش رو تحقیر بکنه برای تو مردم مهم نباشه الله مهم باشه که چه قیمتی نزه الله دارید چه قیمتی نزه الله دارید معیارت همیشه در هر کاری که میکنی انجام میدی رضای الله جل و باشه الله از این کارم راضی و خشنودی یا نه يبستو تشهلوين حديث آخرين حديثة إمباب إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسعب بن مقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا حديث إن جد رسم مرسلا حديث حسن بصر رحمه الله ولكن متسلا مادة نزل تبروني شواهدهم دراسة حديث أمينة عائشة بحديث رأى الباني تحسينه شو حديث ان زن ينفي زن رسول الله عليه الصلاة والسلام مياد ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي بادت برسول الله علیه و سلام میگه ادعوا الله يدخلني الجنه دواكون الله ما وارد بهش بکنه رسول الله صلی الله عليه و سلام بهم پیرزن میکنه میگه ای مادر فلانی یا ام فلان ان الجنه لا تدخلها هاجس می میگه پیرزن وارد بهش میشه پیرزن که وارد بهش نمیشه دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلام تقاضای دعا میکنه که وارد بهش بشه رسول الله صلی الله علیه و میگه پیرزن وارد بهش نمیشه قال فولت تبکی از اونجا از اون مجلس خارج میشه و شروع میکنه به غیار کرده رسول الله صلی الله علیه و گفته پیرزن وارد بهش نمیشه زنم پیرزنه مزاح بود باش رسول الله صلی الله علیه و شوخی میکرد باش قال رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اخبروها بهش بگید انها لا تدخلها و هی عجوز زمانی که وارد بهش میشه با پیریش وارد بهش نمیشه پیرزن با اون پیریش وارد بهشت نمیشه بلکه جوان میشه وارد بهشت میشه الله جل و علا در قران میگوید رسول صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت میکنه ان انشأنهن انشاء ابکار عربا اترابا زنها در بهش دختر بچه میشن چند سال میشن شنوچه در حدیث هم اومده که یدخل اهل الجنه تا الجنه جردن مردن بکحلین بنی 30 او 33 اهل بهش زمانی که وارد بهش میشن 30 یا 33 سال این پیرزن به عنوان یک دختر باکره وارد بهش میشه نه با اون پیریش و کهنسالیش جوان وارد بهش میشه که لذت اون بهشت و نعمت های بهشت به کامش بینیشینه و الله جل و علا اینچنین بندگاه را اکرام میکنه خب این زن با این حرف مسلمن خوشحال میشه خورسند میشه زمانی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اینچنین شوخیش تبدیل میشه به مجدگانی شوخی رسول الله صلی الله علیه وسلم حقه شوخیش تبدیل شد به مجدگانی تو جوان وارد بهش میشی یک تحصیلیته اینم یک دلداریه ندل خوشيه ندلو شاد مكا رسول الله عليه الصلاه والسلام بهافوش سبحانك اللهم نحمدك سبحان الله والحمد لله والصلاه محمد والاله محمد